با خشنگی او خداوند جان و خرد و با درود بر روان و فرابهر اشروز ارتوشست و همه زنان و مردان نیک و پارسای گیتی و با درود بر همه شما بهدینان، همیهنان و شنوندگان راژیو امید که همگی تم درست و به کامه باشید پنشنبی دیگر است ارد روز و بحمن ما یا نوزدهم بهمن بحمن سال سه هزار برابر با هفته فوریه دو هزار دوستان پیمان داده بودم که کمی به تاریخ بپردازیم و برخی از بزنگاه ها، هنگام ها و یا رویدادهایی رو بررسی کنیم که در پیوند با دین بهی و بهتینان هستند و یا از دیدگاه فرهنگی، اجتماعی و ملی آگاهی داشتن از اونها مهم است. زیرا که آنکه ناموخت از گذشته روزگار هیچ ناموخت زهید آموزگار در کشور ما ایران زمین یه مشکل بزرگی وجود داره به نام نبود آزادی و آزاد اندیشی و آزاد خواهی یا اون که با واجه دموکراسی امروز خوانده میشه. رسیدن به آزادی نیازمند یک زیربنا و پشتوانه فرهنگی درست و مناسب است و البته خب رفاه که بدون اونها نمیشه به آزادی رسید و این پشتوانه فرهنگی است که میتونه راه رسیدن به دولت‌های ملی و مردم سالار یا میهند رو فراهم بیاره این پشتوانه فرهنگی که از اون سخن میگیم نیاز به یک نوزایی فرهنگی داره یکی از راه های یادگیری یا فراگیری توجه به راه همانندی است که دیگر مردمان روی اینگیتی رفتند و با نگرش به اون فرایند و اون گامه گوناگونی که اونها برداشتند تا به گونه ای آزادی و رفاه رسیدن میتونه راهنمایی برای ما هم باشه البته با نگرش به بیگمان ویژگی های فرنگی خودمون یا به زبان دیگر ویژگی رفتاری هر مردم و سنجش با آنچه که خود ما داریم چنین فرایندی رو خب مردم اروپا رفتند اروپایی که امروز برم اروپا داریم برم فرایندی که به برنامه رنسانس نامور هست که چم اون مانای اون همون نوزایی است یا زایش نو هست واژه رنسانس که از بنواجه رناچی آمده همون نوزایی یا نوزایشه یا به گفته جوانش جادیدین شفاه تولد دیگر تولدی و زایشی دوباره از درون خود و از آنچه که خود داریم بر روی این جستار رو آغاز می کنم و به پیش میریم تا ببینیم که چند اندازه به درازا خواهد کشید گمان نمی کنم که یک بار بسنده باشه که اگه چنین بودن نشستای های آینده خب اونجا پی خواهییم در کتابهای فراوانی اشاره به رنسانس یا همون نوزایی اروپا شده. اما خب شروبختانه کسی اون رو به درستی برای ما بررسی نکرده تا انگیزه و بنیاد اون جنبش بزرگ فرهنگی تاریخی رو بشناسیم. جنبشی که دوباره اروپا رو به تاریخ و فرهنگ میشه گفت اروپایی برگردوند و موجب پیشرفت اون شد باید روشن بشه که نوزای اروپا بازگشت از مسیحیت به فرهنگ یونان و روم باستان بوده که اونگاه برای ما ایرانی ها هم بهتر روشن خواهد شد که نوزایی فرهنگی ما هم باید بازگشت به فرهنگ خردگرای کهن ایرانی باشه من درباره باره نوزای اروپا چیزهایی شنیدم چیزهای خوندم اما خب به این اندیش نیافتاده بدم که تجربه اون میتونه برای کشور ما و آینده ما نیقدر ارزنده باشه و به اونجا رسیدم دانستن انگیزه پیدایش نوزایی در اروپا و سپس خود این رنسانس خب برای ما ایرانی تبارها بسیار مهم و زندگی ساز میتونه باشه زیرا ما وقت برنامه آمون زنده و درستی برای شناخت و پیشرفت اروپا یا واپسگراهی و درماندگی کشور خودمون نداشتیم اگر بخواهیم پیروی و یا بیزاری از غرق و یا اروپا رو به کنار بذاریم و از آزمون بزرگ تاریخی اونها درسی برای ساختن و پیشرفت دادن کشورمون بیاموزیم میتونیم در واقع به پیش بگیریم و بیاموزیم باید پیش از هر چیز تاریخ اروپا رو بدون پیشتاوری پژوهش و بررسی کرد تا به شناخت درستری از این پدیده نوزایی برسیم. و بدین گونه پی خواهیم بود که چگونه رنسانس و نوزایی در اروپا موجب شکوفایی دانش و هنر و موسیری و انسانگراهی یا اون که به نام هومانیزم نام است، آزادی فردی و دموکراسی و همچنین رفاه مردم اروپا رو دنبال داشته بزرگترین درس تاریخی که نوزایی اروپا برای ما ایرانی ها داره اینه که بدونیم این ترین انگیزه برای برپا کردن این رنسانس یا نوزایش فرنگی آگاهی و شناخت مردم به ویژه ایتالیا از گذشته تاریخی و فرهنگ روم و یونان باستان بوده آگاهی و شناخت از گذشته تاریخی و فرهنگی بوده که اونها رو خواهان بازگشت به خیشتن یا تاریخ و فرهنگ گذشته خودشون کرد. نوزای اروپا کنار گذاشتن مسیحیت و بازگشت به خیشتن آنها به ویژه بازگشت به خیشتن ایتالیایی ها به تاریخ و فرهنگ کهن خودشون بود همچنان که ما ایرانی ها به گذشته تاریخی و فرهنگی ایرانی پیش از اسلام سرفراز هستیم مردم ایتالیا هم به دوران امپراتوری روم و فرهنگ یونان باستان سرفراز بودند. نه به مسیحیت و الهیات مسیحی با برپایی این نوزای فرنگی بود که اروپایی تونستند دوباره گام در راه دانش و خرد و رفاه بگذارند و پس از رنسانس هست که مثلا در راه آزادی و دموکراسی گام بردارند و تا به اینجا برستن که امروز هستند خب کمی حالا به اون زمان برگردیم شهر میلان در اروپا یا پایتخت روم باستان همیشه به دوران کوهن و اون ترادات یا سنت پیش از مسیحیت خودش می‌بادید. کنسول های شهر میلان با شهان مسیحی زیاد خوب نبونن و در برابر اونهای سادگی میکردن مردم شهر میلان از هر گونه نوآوری و نوآوران که از پای بنیاد مخالف مسیحیت اون دوره بودن پشتیبانی می در جهان مسیحیت تنها در این شهر و چند شهر دیگر شمال ایتالیا بود که مردم کلیسه ها را خراب کردند و تندیس های رو بر اون چلیپا یا سلیب وار را کردند. در این شهرها بخشی از شیوه ها و بنیاد های اجتماعی روم کهان هنوز بر مونده بود بزرگترین دلیل آغاز پیدایش این روند رنسانس شناخت و آگاهی مردم شمال ایتالیا از گذشته تاریخی و فرنگی خودشون بودن گفتم که چی شد اینا پیشکام شدن و تونستند به این جمعش دارمان بزنن و خردمندان اونها تونستند در روندی با تلاشای فراوان فرهنگ روم و یونان باستان رو دوباره در برابر مسیحیت به میدان بیارند و اون رو از نوع زنده و شبه، شبه از نگاه تاریخی خیلی باهمیت هست که بدونیم که رنسانس در همان شهرهای شمال ایتالیا که پایه تخت امپراتوری روم بود و یک گذشته گسست ناپذیری با روم و یونان باستان داشت پا گرفت و گسترش برکرد و پس از شکوفایی در اون شهرها بود که تونست از کوههای آلپ بگذره و سپس سرف سر اروپا رو بگیره خب این جالب باست اندیشه برانگیزه اگه مسیحیت از ایتالیا به کشورهای دیگر اروپا رفت گسترش رنسانس هم از ایتالیا بود فرهنگ مردم ایتالیا در سندش با دیگر کشورهای اروپایی بیشتر به فرهنگ روم و یونان باستاد گره خورده بود و کمتر جنبه، مسیحی به خودش گرفته بود ایتالیایی ها گهگاهی در اون نستاجی یا تمه دوران های گذشته خودشون به یه شورشایی دست می چنانچه در سال 970 میلایی ترسایی ویلگاردوس نامی در راونا منطقه راونا به برپا کردن جنبشی برای حتی برگرداندن آین مهر یا میترا برخواست در شمال ایتالیا، بنیادهای فرهنگ روم باستان مانند ایران در دوران تازیان دوچار خرابی و ویرانی نشده بود وارونه ایران مسیحیت با جنگ و کشتا وارد روم نشد بلکه این خود سنای روم بود که اون رو برگزید مسیحیت رو و در میان امپراتوری گسترش داده بود همون شهرهای ایتالیا که از جاهای دیگر اروپا کمتر به مسیحیت گروید بیشتر صنعتی و دارا و سروتمند شدن خب میشه گفت اون مسیحیت که موجب رکود و فرهنگی و واپسگیرای اروپا در صده میانه شد همچنان که تاریخ میگه به زور شمشیر وارد اروپا نشده بود این دین ریشش در خب در یهودیت است و مسیحیت دینی نبوده که برخواسته از تمدنی در حال شکوفایی یا پشوانه فرنگی داشته باشه این دین از اسرائیل که اون موقع اون زمان خراجگزار بود آغاز میشه گسترش مسیحیت یک واکنش پیکارجویانه وو، بود امیددهنده بود به یهودیان اورشلیم که برای ظهور مسای یا مشی یا مسیح نجات دهنده در برابر زورگویی و چیرگی رومی ها بود که نخست دین بردگان و بیچیزه یا استعمار زدگان امپراتوری رو میشه این دین مسیحیت آروم آروم تا پای تخت امپراتوری روم همراه برده و مردم تویده هست و یهودیان دوریت گسترش پیدا میکنه که اونها شکل تهدیدی در اون دوران برای امپراتوری روم البته به شما نمیموند سنای روم به این اندیشه میرسه که از این مسیحی های که دینشون هم ایرانی نیست و برای روم هم نمیجنگیدن میشه دین و شهروندان خوبی ساخت دینی که به سراسر اروپا گسترش پیدا کنه و کشورهای گوناگون امپراتوری روم رو به سرا با هم یگانه و متحد بکنه و میشه از شهروندانی از این دین ساخت که همه پشتیبان امپراتوری روم بشن و انگیزه جنگی با بیگانگان و به ایرانیان رو هم داشته باشند رومی ها خب اونا میخواستن خودشون رو یک کتاز جهان میکنند اما تناکشفری که جلی اونها رو میرفت همون امپراتوری یا شاهنشاهی توانمند ایران بود اشکانیان و سپس ساسانیان در چند جنگ بزرگ اونها رو شکست دادن و برتری خودشون رو بر اونها پابرجا و استوار نگه داشته بودن در اون دوران آین نهر یا همون دین میترا و سپس هم البته مانی در اروپا رواج پیدا کرده. سادم امپراتوری روم دینهای ایرانی رو که دین رقیب و یا دشمنان خودشون می‌دونستند که اونها رو در جنگ شکست میدادند. در ایران پس از اشکانیان ساسانیان در دوره دین و دولت رو میدانیم جگانی کرده بودن و مرکزیت نیرومندی رو پرید ووده بودن که از نگاه رومی ها البته این دور نبود. رومیان به پیروی از ایرانیان میخواستن دولت نیرومندی رو سازمان بدن و همچنین انگیزه جنگیدن با ایرانیان رو هر چی بیشتر برای سربازان خودشون فراهم کنند. و نشستن که آن رو بررسی کردن که امپراتور و سنای روم به این برای اند رسیدن که از اون دین تازه رسیده که دین ایرانی هم نیست میتونن دین و دولت میرومندی رو در برابر ایرانیان پدید بیارن خب به گونه نیاز امپراتوری روم به دین مسیح گره میخوره و رومی ها اون رو جانشین دین های ایرانی که گفتیم مهر و میترا و مانی و ها بود میکنن که در پایان پیروان این دین های ایرانی رو به شدت کشتار و سرکوب میکنن یه نمونه از اون کشتار کاترها یا کاتارها در جنوب فرانسه بود در اون دوران آیین و ترادادهای دین میترا و سپسمانی در میان مردم اروپا خبریش دوونده بود و از میان برداشتن اونها هم به سادگی امکان پذیر نبود و از اون رو سران امپراتوری روم بهتر دونستن که این آین ها رو آیین های, های ایرانی رو در آین تازه ساخته این مسیح با هم در هم کنن، همراه کنند تا پذیرش اون برای مردم سوالاتر بشه. خب اینا رو گفتیم و میدانید برای نمونه همون میشه گفت مراسم شستشوی کودکان برای نامگذاری، نام های ایرانی پدر و پاپ با اون جامعه،, جامعه های مذهبی ایرانی رو که از آین مهر گرفتند اون 25 دسامبر روز مهر رو که روز زایش مسیح گذاشتند و خب بسیاری دیگر از این دست که در جای خود به اون میپرزم دین مسیح که می‌بایست پاسخگوی مردم کنچگاه و حشیاران روم بشه بایستی خب جامعه یونانی بتن میکرد برای فلسفی کردن این دین اومدن چکاک کردن؟ پالتو افلاتون و ارستو رو از هم مناسب تر چون ها خب اصطلاف فلسفه یونان بودن دیگه اما مضبور میشن این پالتو رو میشه گفت وارون چپه بردن مسیحیت ببوشونن چرا که تنها بخش ماوراتلیه یا اون فراگیتیه فلسفه ای و ارستو رو در اون وارد میکنن نه اون بخش های جامعه شناسی و اخلاق و یا سیاست و فرهنگ اونها رو گسترش دین مسیح در اون دوران یک پدیده سیاسی شده بود و بیشتر در دشمنی و رقابت با امپراتوری ایران انجام میگرفت و سنای روم پشت رو گرفته بود وگرنه هیچگاه این دین دینه به کاتولیک یا جهانی در سراسر امپراتوری روم نمیشد. خب این هم جالب است که هر دینی به وسیله پیروان اون دین رواج پیدا کرده میکنه اما مسیحیت به وسیله خود امپراتوری روم گسترش پیدا کرد و فراگیر شد. دوستان این رخداد مهم تاریخی شاد در اون دوران کمارکان به سود امپراتوری روم بود اما از نگاه تاریخی گسترش دادن و ساختن الهیات مسیحی به دست یونانی ها و رومی ها، اروپا رو دست کم هزار سال تا بر پای رنسانس یا نوزاییشون از شکوفایی و پیشرفت بازداشت جنبش نوزایی از اون جهت بسیار باهمیته که دوباره تاریخ اروپا رو به میشه گفت به راه بنیادی فرهنگ و فلسفه یونان و روم باستان بازگشت. خب همزمان چند رویداد دیگه هم به شکوفایی و گسترش رنسانس کمک کرد. چنانچه مردم جنوب اروپا تونستند از جریانهای تاریخی از اون میون جنگ های چلیپایی یا صلیبی به سود خودشون بهره ببره می‌دونیم که بزرگترین سردار جنگ های جهان اسلام کسی بود به نام صلاح ایوبی یا صلاح ایرانی و پس از او جانشینانش سربازان اروپا رو به خاور مدیترانه یا ایران غربی ایران باختری کشونده بودند به خاطر این جنگ های سلیبی خب اینجا باعث میشه که اون سربازان آشنا بشن از نزدیک به شیوه زندگی مردم اون سامان که خب ایران طبال بودن یا زیر تاثیر یا زیر هنایش فرهنگ ایران بودن و همچنین دیدن کارگاه های تولیدی آسیاب های بادی و آبی شیوه کشت و کشاورزی داروسازی، دانش پزشکی و همچنین کاغذ سازی ایرانیان تجربه های ارزنده ای رو برای اونها به وجود رو پس از برگشتن به اروپا خب اون جنگ ها که تموم شد یه آرامش نسبی در اروپا به وجود اومد بعد از پایان گرفتن جنگ های چلیپایی یا سریبی مسافرت شخصی به نام مارکوپولو به چین و شناختش از صنعت باروت و کاغذ سازی و اینها که چینی ها هم اون رو به گونه ای از ایرانی ها مخته بودند با دیگر فراورده ها برای مدام اروپای دانش های تازهی بودند پرتغالی ها اومدن از راه دریا خیلی راه دریا کشتی سازی به اینا خیلی کمک میکرد به هند رفتند به آمریکا رفتند و برای اینکه خودشون بدون میانجی با هند داازستت داشته باشند اینها هم کمک بزرگی کرد به رشد و شکوفایی ابزارهای تولیدی به ویژه کشتی سازی این رشد نیر تولیدی چی شد موجب به زیر کشت رفتن زمین های بیشتری شد خب فراورده های خوراکی رو افزایش داد تولید بیشتر شد و همه اینها روی هم، موجب رفاه و دگرگونی در روابط کار و بازرگانی و کشاوردی و شهرسازی اینا شد که در واقع تمدن اروپا رو به این گونه پیش رفت شهرهایی که فودالی بودند در شمال ایتالیا برای نیاز اون جامعه های فودالی ساخته شده بود اما شهرهای نویی که از صده 13 و 14 به این صورت ساخته بودند اونها دیگه نمیتونستند بر پایی اون سیستم و رعیتی یا فعودالی گذشته ساخته بشند و این شهرها میباید یک خواسته های تازه و دیگری رو هم در مردم براورده کنند با رشد و گسترش نیروهای طولیدی در این شهرها که خب مردم هم به اندیشه و، خرد و فلسفه و فرهنگ یونان آشنا شده بودن دیگه توانایی دیگر به زمین و نفرات و مردان جنگی نمود که به کاردانی و سخنوری و قانوندانی شده بود به کسایی که در نام نویسی و به ویژه به زبان لاتین توانایی و مهارت داشتن بهشون میگفتن دیکتیترز که از همون دیکته خودمون میاد. که این واژه دیکتاتور هم در واقع از اونجا ساخته شده توی اون شهرها هر روز کارخانه و کارگاه های برپا می شد که که اینها خب نیاز به نیروی کار تازه و دانش تازه داشتن از این رو نیاز به برپایی آموزشگاه و دانشگاه های مدرن جدای از کلیسا برای گسترش و شکوفایی دانش و هنر روز به روز بیشتر میشد شهرها گسترش و آبادانی خودشون رو هم مدیون بازرگانی و صنعت میدونستند و اونها نیازمند کارمندانی بودند با سواد و ورزیده در دانش و فناوری که با وجود مخالفت کلیسا اونها آغاز کردن به ساختن آموزشگاه ها و دبستانهای بسله غیر دینی غیر مسیحی و افزون بر فراگیری زبان روم و یونان باستان واژه‌های تازه هم بر پایه و بنیاد اون زبان‌ها ساختن زبان کهنشون تا بتونن اون فلسفه کهنشون هم بهتر بفهمن و درک کنن و میشه گفت که از دانش آموزی و دانشجویی و پژوهش روی یک کار شرافتمندانه کردند. و بدین روش به دوران خام ذهنی های میانه یک کوبنده ای وارد کرد. در دوران آغاز این دوره رنسانس کنجکاوی و گفتگو درباره جهان باستان و یونان کوهن سراسر اروپای لاتین رو با دانش و فلسفه درگیر میکنه اون روند پژوهش و بازنگری به تاریخ گفتیم از شهرهای شمال ایتالیا آغاز میشه و با یک شتاب شگفتانگیزی گسترش پیدا کنه از نگاه اقتصادی هرچند این شهرهای ایتالیا در سرزمین اصلی امپراتوری بودند اما از اون جدا شده بودند و میشه گفت خودیستار شده بودن و اداره امور خودشون رو به دست گرفته بودن ایتالیایی ها برای پایدار موندن و آزادی شهرهای خود از کشمکشی که میان پاپ که در روم بود و شاهان اروپا بهره میبرند ویژگی این شهرها به, به گسترش و رشد جمعیت انباشت نیروی خاری گوناگون برای تولید شده بود رشد بازرگانی انباشت سرمایه کارگاه و کارخانه‌های بزرگ به ویژه پارچه بافی و رنگرزی پارچه کشتی سازی، ساختن راه های صادرات واردات، ساختن دانشگاه بانکداری همین‌ها اینها سبب گسترش این شهر شد مرکز بانک های اروپا در اون دوران شهر فلورنس یا فلورانس در شمال ایتالیا شده بود. واجه دیپلوماسی هم در رقابت و جنگ میان این شهرهای ایتالیا ساخته و پرداخته شده بود. و و سیاستهای ماکیاولیستی هم که تا کنون اروپایی برای سود بردن هرچه بیشتر اون رو الگوی سیاست‌های اقتصادی خودشون قرار دادن هم ساخته اون دوران می باشه. شهرهای شمال ایتالیا زودی مرکز یا گرانیگاه اقتصاد اروپا میشن. بولونی یا بولونیا نخستین شهری بود که از امپراتوری روم جدا شد اما همیشه زیر فشار پاپ و نمایندگانش بود. این شهر تا میتونست به شیوهی دموکراسی خودش رو اداره می کرد کشتی پش از انگلیس میومد، رنگ و دیگر مواد خام رو از آسیا برای کارخونهای های به شهرهای ایتالیا میوردند یک بازرگانی بود به نام فدریکو که این رنگدان های گیاهی رو از خاور زمین و بیشتر از ایران وارد میکرد این دانش رنگرزی خاورزمین در تکنولوژی رنگسازی اروپا هم یک انقلابی رو میشه گفت پاییدو فلورانس از سده 13 تا 15 پای تخت مالی اروپا شد و در اونجا بود که نرخ پولهای اروپایی ارزیابی و گیری میشد سیستم بیمه و بیمئی رو از سده 13 میلادی برای اون کشتیای های بازرگانی که در کار بودن رایش کرد. نخستین جوانه های رنسانس هم در همون شهر فلورانس یا فلورنس شکوفا شد که شهر فرهنگی ایتالیا شده بود و به اطن ایتالیا نامور شده بود در فلورنس سنف ها بودن، اتحادی ها بودن، سنف های هفتگانه و چاردهگانه که با گروه های دیگه دارای تشکیلات شده بودند. اما هنوز برای رعی دادن بایستی هر کسی هموند یکی ای از این سنف ها کارگرها، کارگرها با مردم نادار و مثلا برده ها این که سنف نداشتن نمی تونستن رعی بدن در سال 1378 میلادی کارگران به کاخ ها آختند و شورای شهر رو از میان برداشتند و میشه گفتش که فرمان روای کارگری رو اونجا برپا کردن که تا سال 1382 دست کم چار پنج سال توانسته بود دوام بیاد تنها نیروهای های کننده برای اون همه دگرگونی و نعاوری های که میشد چی بود؟ خب کلیسا بود و الهیات اون با اون سیستم فعوداری که خودش رو در تهدید میده دهن کلیسا برای جلوگیری از هر گونه نوآوری و به گفته ای ارتداد سیستم اون بازپرسی اندیشه که به انگیزستیان نعاور هستش برپا میکنه و هزاران نویسنده و آزادی خواه رو در آتش نادانی و درماندگی خودشون سوزوندن در اون دوران نخبگان و روشنندیشان شهرهای شمال ایتالیا بودن که به چارجویی پرداختند و اون را دریافته بودن که بدون فلسفه و فرهنگ نمیتونن به جنگی کلیسا و الهیات مسئلیش برن و در اون انگام بود که به اندیشه رفتن. اما خب به هر سو که نگاه کردن دستاشون رو خالی دیدن پس و پس از کنکاش های فراوان به ناچار شاید به گفت به روم و یونان باستان برگشتن و سپس با تلاش های فراوان تونستن از اونجا سنگ بنای نوزایشون رو پای کنند. و از اون پس به کمک فلسفه و فرهنگ یونان باستان بود یک جریان استوار فرهنگی فلسفی رو در برابر کلیسا بنا بودن نخستین نوآوری نیاز به فراگیری زبان کهن یونانی و لاتین برای شناخت فلسفه و فرهنگ و دانش روم و یونان باستان بود اونها چکای کردن که دو هزار سال به گذشته برگشتن و دوباره اون فیلسوف های یونان رو به میدان موردن و دانشمندان و دانشجویان با امید و آرزوی فراوان آغاز کردند به فراگیری زبان کهن یونانی و شناخت دانشمندان و فیلسوفان یونان باستان. در صده های میانه زبان یونانی هنوز خوب شناخته نشده بود که فیلسوفان و دانشمندان یونانی به خوبی شناخته بشن از اونجا و کتابهایی هم که خونده میشود تا از لاتین ترجمه شروع یا عربی دانش یونانه باستان چک کرد که دنیا تازه‌ای رو برای روشنندیشان اروپا گشد اونها تا اون زمان تنها ادبیات روم رو خوندن و یه آشنای سرراستی با فیلسوفایر یونانی نداشتن اگر کتابی هم خونده بودن کمکی به شناخت اونها از فرنگی یونان میشه گفت نگیاده زیرا اون کتاب ها مناسب اون دوران مسیحیت نوشته شده که با ایده ها و ایدهال های دوران کلیسا همیخده شده بود میشه گفت سانسور کلیسا از سال 1473 به این سو شخصی به نام کوپرنیک، دانشمندی بود در چندین دانشگاه ایتالیا درس می دانشجوها از سراسر اروپا می به این دانشگاه و نخستین دگرگونی هم از همین دانشگاه در شمال ایتالیا پدیدار می شه. که در کنار دبیرستان‌های مسیحی و کلیسا، آکادمی اکادمی افلاتون رو که یک زمانی 900 سال واسه خودش برپا بوده دوباره از 9 پس از 1500 سال برپا کردند و صرف زایشش را داش گرفتن در همون سده 14 پس از اینکه بیزانس یا بیزانس یا بیزانس به دست ترکای مسلمان عثمانی میفته، دانشمندان بیزانسی یا یونانی به ایتالیا فرار میکنن و میان در همون دانشگاه های اونجا آموزش میدن. آموزش میبینن و آموزش میدن. که باعث میشه فرهنگ و فلسفه یونان کوهن رو باز بیشتر رواج بدن و شناخت بیشتری راجبش به دست بیارن مرمون با که با اومدن اونها که با فرهنگ کوهن ایران هم حتی بیشتر آشنا بودن کتابخونه ها بیشتر میشه بزرگتر میشه و میشه گفت دانش خاور باختر اونجا میاد و هم انباشته میشه و پربارتر میشه پس از این دوران کوتایی دانشمندان و هنرمندان فراوانی از این دانشگاه ها میان بیرون و اونها چون آشنایی و شناخت بهتری از این فلسفه و فرهنگی که به دسته بوده بودند چکار کردند تونستن فرهنگ رو دوباره زنده کنند. این استادان نوزایی و و امسانگرا یا همون هومانیست برای خودشون نام های لاتین برگزیدن، نام های رو پوشاک و جامعه های باستانی رو فراهم کردند اونا رو پوشیدن شاگردان اونها تا اونجا پیش رفتن که اون میشه گفت ایمان مسیحی رو به اندیشه و خرد رومی دگرگون کردن و در آن دوران کومیدی های لاتین هم اجام شد تئاتر ات و کمدی که به زبان لاتین انجام شد و در اون کمدی ها سال روز پیدایش روم رو به نمایش میگذاشتن و روی هم وفته استادان و مردم ایتالیا اجراکنندگان این نمایش ها رو به نام, به نام های کهان روم هم میشه گفتش که سر افراز میکرد به گونه شده بود که تو اتاق و اون تالارهای درس جا کم میرمد و دانشجویان برای اینکه جا هر دست ندن شب رو هم اونجا میخوابیدن این اندازه تشنه دانستان و آموختن شده بوده و آرزوی بازگرداندن اون امپراتوری رومه باستان و شیره زندگی اون دوران در سر داشته. اینجا این ساختمون آکادمی که درست دانشگاه آکادمی که اینا میومدن پاپ اون زمان نامش گذشته بود خانه زنتی زندیکن یا زندیکن یا همون کافران به در در های میانه واس اون بخش مذهبی که بهش میگن تئولوژی یا خداشناسی مذهبی یا اون اسکولاستیک ارسطو و افلاطون خب بواسطه اسلام و مسیحیت شناخته شده بود اما در دوران رنسانس به جای اون اسکولاستیک یا بخش تئولوژیش و مذهبی اون بخش اخلاق که اتیک بهش میگن بخش اخلاق و سیاست یا politic عرستو رو انتخاب کردن برگزیدم نه اون بخش فراگیتی که اسکولاستیک شد. و یک فضای جذب ساخته شد که کشیشان حتی پس از اون به فلسفه اسکولاستیک عرستو خوشحال دا بودند دیگه و با دانشجویان حتی به رقابت پرداختند کشیشان برای که بیشتر بیاموزند به دانشگاه های تازه ساخته شده رفتند و آغاز به خواندن کتاب های دیگر کردن و میشه گفت که دانش آموختن حتی این کشیش ها خودش سبب برداشت های از مسیحیت شد که گروه های و میشه گفت ناهمگون مسیحی از اونجا درست شد و شاخه شد و خود کلیسا هم در یک دوران کوتاه میشه گفت خودش رو به انسانگراهی یا هومانیز نزدیک کرد در روم ای بود با 5000 جلد کتاب البته خب در سنجش با کتابخانه شاپور چیزی نیست ولی به هر روی برای اون دوران خب 5000 جلد هم خیلی بود که در اروپای اون زمان نمونه بود و شخصی به نام پاپئوس که یک مد تاریخ دان و دانشمندی بود پاپ شده بود در اون زمان که کتاب تاریخ جهان رو نوشت که بخش خاوری اون کتاب رو اون کریستوف کلمب که پیدا کننده یا کاشف آمریکا هم بود اونو خونده بود خب با همین آگاهی‌های های تاریخی در بیابیم که رنسانس یک دوره زمانی کوتاه نبود یه سال دو سال نبود بلکه آرزو و آرمان چندین صده مردم اروپا و بویژه ایتالیا برای بازگرداندن فرهنگ و هایی بود که از دست داده بودند و یا بازگشت به خویشتن خویش هایی که در ناخداگاه اونها از گذشته تاریخی و فرهنگی روم و یونان باستان بجابدد فریختگان ایتالیا تونستند اون گذشته سرفرازتر تاریخیشون رو به یک جنبش نوین فرهنگی توانمند گرم کنند و این جنبش تونست از راه گوناگون برخورد اندیشه هنر از ایتالیا به سراسر اروپا گسترش پیدا کنند در بزرگترین آثار هنری دوران رنسانس در فلورانس چگاه اومدن و خدایان قدیمشون هم زنده کردن در رومیان خدای ونوس به خدای زیبایی و اینا بود دوباره زاده میشه که در میتولوژی های یونانی خدا از کف آب دریا زایده میشه و بعد به خشکی میاد و سپس در جزیده غبرس مندگار میشه این خدای زیبایی در دوران این دوباره به اندیشه مردم برمیگرده زیباشناس اشناست میشن و این به اون چم یا که مردم اروپا میخواستن هنر و ادبیات به سراکوهن خودشون رو در برابر دین تازه یا مسیحیت و الهیات اون از نو زنده کنن و نشان بدن که انسان گناه انسان گناهکار یا بدهکار را فعیده نشده بلکه نیک گوهر و پاکسرش است و به میخواستم میخواستن که اون زیستن و خوشباشی و زیبایی و هنر رو که دینهای سامی زشت جبه داده بودن دوباره زنده کنن در ادبیات اروپا برای بررسی این دوره یه اشارهی هم به تابلوی هنری به نام رفایل میشه این تابلو برای شناخت این دوره و اشاره و بازنگری به اون آکادمی آتن باستان که دبستان آتن نامیده میشد میکنه و اونجا روصد چشمه رنسانس میشنناسه که جایگاه دانش و فلسفه بود نه اور و یا تصویر به چی کشیده شده مسی. خب اکنون ما پنجاه دقیقه رو گذون و من گمان میکنم که برای یک بار نشست بسنده باشه که دیگر هم خسته نشید و هم بتونید پید بگیرید البته برای کسانی که خب از شدهش رو گوش میدن دیگه ادم اون دیگه دست خودش است میتونه هر زمان خواست وسدش ایست بذاره دوباره آغاز کنه ولی به هر روی ما اینجا بسانده میکنم و میشه گفتش که هنوز میشه در این باره شاید یک بار دیگه هم سخن گفت هفته آینده رو هم این رو ادامه میدم دوستان و هم یک نگاهی هم میکنیم به جشن سپنگان یا سپندارمزگان سپنگان که میدانیم جشن بزرگ داشته زن و زندگی هست و نه تنها روز سپند از ماه سپند، بلکه میشه گفت تمامی ماه اصفند رو به زمین و زن و زمان و زندگی ویژگی داده میشه خب بنابراین من گمان میکنم که پرسشی هم ندارم از این رو شما رو به خداوند جان خرد میسپارم و برای همتون آرزوی سربلندی و شادی و دی و نیک دیوی دارم و مانند همیشه میگم تا درودی دیگر بدرود شب خوش و خدا نگهدار شما